بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله سوال کردن آجا فرد ناامیدی از خود یا ناامیدی از خدا درشیست انسان وقتی کم توجه هست از خودش ناامید میشه قافل از اینکه که زنده است همین که خدا فرصت داده و داریم نفس میکشیم زنده هستیم نشوندن این هست که خدا به فکر مونه خدا ما رو به حساب آورده که خلق کرده و هنوز حیات داریم این نشون میده فرصت داریم یکی از گناهان کبیره از گناهان بزرگه تا بین گناهان کبیره یأس یعنی از, از خدای متعال هست قنوت بته مؤلد کنود که همون گس از خداست از گناهان خیلی بزرگی. انسان همین که زنده هست باید به تلاش و قاننشات کارهای گذشته که نیست دیگه زمان گذشته حسب شده معدومه گفت به پدرش صلبات آیدم که هنوز نییمده زمان حال مهمه. ما بین دو تا عدم داریم زندگی میکنیم بودمون مهمه. این بود رو باید نگاه کنیم ببینیم خدا اگه نکتته داره حرفی داره، باید و نبایدی داره گوش بدیم. خود گوش دادن این جبران میکنه. انل حسناتیذب نه سیاط. زمان حال رو اگه دقت کنیم و اونچه خدا میگه گوش بدیم، فراغلون رو رقبور کنین اون بدیها و سیقاتی که از قبل بوده خود به خود شسته میشه حتی اگه مثلا توبه هم نکنین رسانه واسه نامی بود همین که زندگی ام نشونه امید و بعد جون سوال کردن در میان اعمال فراغونی که برای روزها و شبهای های مبارک است توصیه می کدام یک اصلا ترک نشود بعد از عمل به دستور خدا که این ماه عزیز و پر پرخیر که فرمود انفاس و کنفیه تسبیح تنپس که یک کار غیر اختیاری هم هست اما خود این تنپسه سبب سبحان الله و تسبیح خدا رو داره. نام و عبادت. خواب دیگه خواب دیگه طبیعت انسان اختزام میکنه خوردن و خوابیدن رو میگه اینا همش عبادته در یه همچین ماه عزیزی کنار روز گرفتن بهترین کار قراهت قرآنه سعی کنید با قرآن هنس بگیرید قرآن سیکل اکبره ایمه مسلم با این خیرات و برکاتی که دارن خودشو میپرمند من سقل از غر اگر بشه با قرآن اونسگره خیلی تبا خیلی ازش کار میاد ظاهرش کتابه یه برقه داره و جملاتی درش هست به نام آیات که مقدس هم هست و نمیشه دست دار. این ظاهرشه باطنش خیلی تبا در تعریف خودش تو قرآن داره که شفا اون قرآن شفاست شفا بخش مریزی های مادی و معنوی هست بدنی و روحی هست شفی اون داره شفی ماست جوبت به کنار انسان میاد و میتونه شفاعت کن انسان رو رحمتون موعظتون اینا همه کارایی قرآن ها میتونه باعث انسان باشه میتونه مهربان مهربان باشه مادر مهربان اند مهربانی دیگه چقدر خیر میرسونه به انسان قرآن رو هم فرمودن که رحمته در همین صحیفه سرجادیه در دعای ختم قرآن داره که هاب هارسا. رسا محافظ انسان میتونه باشه و انسان رو حفظ میتونه بکنه و از از این دست که زیاد هست اینا در همین کتاب ظاهر مثلا است که اگر انسان باش اونس بگیره میتونه حاجتخاش رو میتونه نیازخاش رو برطرف کنه این ماه ماه بهار قرآن هست انسان بتونه قرآن رو قرائت کنید فقط فقره ما تیسر مینال قران قرائت کنید بعد از اتمام قرائت به صورت مس کنید ببوسید به سینه بگیرید باهاش صحبت کنید حاجت بخواید ازش بله بله باشه مثلا ما که این برنامه های مثل زندگی پس از زندگی یا توی کتاب آنسی مرد مثلا خوندم اکثر سرم قریب به اتفاق که صحبت میکردم مثلا میگفتن که ما روی یه اعمالی برایشون برنامه داشتیم که پردم با خودمون مثلا روح خودمون حساب کتاب کردیم دیدیم که نه این اصلا اغلب هم میگفتن که خب این قبول نیست این قبول نیست بعد یه چیزایی رو ازشون قبول میکردن که خودشون به فکرشون مش وقت نمی‌کردن بعد خواستم ببینم که مثلا میگم حالا الان اینکه حالا امام رحمتی یا حالا اونیم که خدا مثلا خودم نمیدونم خود چه چیزی داره خود مثلا ته عمر انسان حالا جدا از ماه رمضان که هست مثلا کسی که روزه میری همین نمازهای عمر خودشو که میخونه مثلاً کار خیلی که انجام میده چطوری مثلا متوجهش بشه که خب اگه من کار دارم انجام میدم خب خدا قبول اگر آدم توجه کنه که بعد از کارهای معمولی که دستور خدا سوی انجام میده میلش به این کارها بیشتر میشه معلوم میشه قبلی ها مقبوله میلش به کارهای بد کم میشه این نشانه قبولی اعمال هست اما اون جایی که میلش هی کم و کمتر میشه یه حالش نیست به این سمت به سمت بدی و مقالفت فرمان خدا میلش بیشتره معلوم میشه اعمال سابقش یه مشکلی داره سوال فرموندن چه کار کنیم هنگام تلاوت قرآن به معانیش توجه داشته باشیم لازم نیست داری که فقر و ما تیسر من القرآن. قرآن قرآآن رو قرائت کنید قرائتش خیلی مهمه داره که قرائتش مستحب عکیده به این استبابه آدم عمل کنه منتها اینجوری نیت کنه که خدایا این نامهایاست از طرف شما به من و وسیلهٔ خوبی است برای تقرب به تو به این نیت بخونه خیر میبره از اونجایی که می‌فرمایید که تأمل کنید در من چه چیزی تدبر در قرآن تدبر از دبر میاد تدبر یعنی پشت قرآن حرکت کردن قرآن خودش که میگه اون رو دنبال کنه آدم و عمل کنه تدبر تأمل نیست تأمل که یکوسان از همه تأملش بیشتر بود هیچ فایده‌ای نداره تفکر اون انسان رو پیش میبره عمله تدبر یعنی پشت سر آیات حرکت کردن دنبال کردن از حضرت پرسیدن از امیر سلام سامون علی این یه اصل دینی کردم کنن پرسیدن که دین به چه معناست حضرت فرمود اد دین هوبل عمل اون چرا که فرمایش کرده خدا اون رو عمل کنید این دینه دریه اون معنای حقوقی اون نمیدونم معنای اصطلاحی حقوقی اون خیلی مورد نظر قرآن و سنت نیست تدبر یعنی عمل کردن به قرآن بخوانید و عمل کنید مثلا در حدیث داره که در قرائتی که تدبر درش نیست فایده‌ای نیست باز اون فکر من باید بیشتر فکر کنه اون فکر کنید چه فایده‌ای داره این که می اگر تدبر نباشه پایدی نداره غیرات یعنی عمل نکنی پایده ای نداره سوال کردن راه مقابله با ترس های دنیایی مثل ترس از دست دادن عزیز با ترس از دوزد و زلزله که مداوم هست چیه؟ در اون جاهایی که خیال آدم نسبت به آینده مشابهش هست و یه ترسی داره این ذکر شریف لا حول ولا قبطه الا بلا الالیه لنزهی می ترس و کم میکنه ولی اون ترس از خطرات مثلا مادی که هست اون دیگه بعضی ترسو هم بعضی ها ترسوتر بعضی, بعضی ها نه مثلا میگه الان بریم تو خیاب و ماشین بزنم وقتی میشه، هیچ کاری نباید بکنه. سوال کردن تلاوت قرآنمون چگونه باید باشه تا بهترین بهره از تلاوت قرآن نصیب ما از کردم زن باید قراعت کرد و از خدا خواست که خدا توفیف عمل به این مطالب رو بده بعضی ها میگن خب بالخواه باید بدانیم چی میگه که عمل کنیم در رساله ها اصاره قرآن و سنت اومده رساله های عملیه اصاره آیات و روایات هلوی تلیمون سلام هست سوال فهموندن سلام جهت فرزمدار شدن توسول به کدام عیم توصیه می هر امامی که باش بیشتر منوستین هر امامی که بیشتر بایش منوستار انسان توسول کنه انشالله خدا فرزمدار سالم و صالح بده ما ماز استاد خوشبخت چندم نقد شده بود که از این الله رحمت الله علیه فراموده در ماه مبارک رمضان مسافرت نرید ولو کربلا الان با توجه به اینکه خب رمضان هست خیلی از هیئتی‌ها مسجدی‌ها اینطوری می خوام برم کربلا خب هر چون نجف و کاظم اینا می کنه در روز نمیتون به هم برم میزی هیفه کدوم شیته چون بعضی میگه نه آقا کربلا استثنا است کربلا روزه نماز اینا حضرت در روز آشورا از جمله اهداف بلندشون رو برپایی سالات، برپایی سوم و سلات می دونستن برای این به شهادت که این لباس پشتورو بتن کرده دین رو به رو در بیارن و دین و دینداری از بین نره برای سوم و سلات شهید شدن از اوقات دیگه اینشالله ما هم خدمت شما از قوم از اصاد صحیحه اینه فرمودن. بله ما که امایدین نیجاد قسطی ده روز کردیم همه رو به زحمت انداختیم سوال فرمودن چندین سال به خاطر شیطنت و اذیت بچه هم دوچار بدزبانی زیاد شنم برای رهایی از این بدزبانی و سبب شدن راهنمایی نمایی حالا الحمدلله و از دیگه تطویم درم بزرگ میشه؟ قفر الله لنا و لکم الله سوال آخر یکی از اقوامم هست خواستگاری داره که پدرش برای ازدواجش راضی نمیشه. اگر وساطت کنیم و با پدرش صحبت کنیم کار درستی هست خیلی درستی و اگر پدره قبول داشته باشه که چیزی که میخواد اگه مقبول باشه، بلد باشه، بعضی پدرها دلشون نمیاد از رو دل بکنند. دختر ریحانه هست. می ترسند. این نکنه حالا به رجی یکی مثلا به عصر و هر عجد گرفتالی بیوکته. زود زود دلش نمیاد. پاید رو ردش کنه. اگه کسی مقبول باشه و قبول داشته باشه بایش توفت کنه اطمان موستره اینشالله خدا به همین توفیق عمل به خوبی ها رو بده صلوات این رو نید کنید